داستان پنجم، مستر فیشر می آید. آقای مدیر گفت هوا سرد شده، بخاری ها رو چرا روشن نمیکنین معاون اداری جواب داد آقای مدیر، بخاری ها رو یکی یکی چک کردم دودکشاشون پوسیده، نمیشه ازشون استفاده کرد اگه بخاری ها رو روشن کنیم، همه توی دود خفه میشیم. مدیر عصبانی شد خب جان من چرا حرف رو به موقع نمیزنین؟ چون دودکشا سوراخ سوراخن این زمستون بعد از سرما بمیریم زود بنویسین معاون اداری در دفتر یادداشتش شروع کرد به نوشتن پیشنویس ای که مدیر دیکته میکرد مدیریت محترم اداره به مناسبت فرارسیدن زمستان جهت تعمیر نوشتی؟ نوشتم قربان جهت تعمیر لوله های بخاری ها. نوشتی؟ نوشتم تعمیر لوله های بخاری ها به عرض می‌رساند که لوله های کهنه لوله های کهنه بله لوله های کهنه قابل استفاده نیست نوشتی؟ استفاده نیست نوشتم آقا لذات حق‌آزا دارد در مورد خرید بله لوله های جدید به مقدار لازم دستور مقتضی را صادر فرمایید این نامه رو فوراً تایپ کنین و بیارین امضاش کنم و بفرستینش چش قربان معاون اداری از اتاق مدیر بیرون آمد کاغذ را از دفتر یادداشتش کند و به دختر ماشین‌نویس داد اینو زود تایپش کن قرار آقای مدیر امضاش کنه دختر کاغذ را توی ماشین تحریر گذاشت. سعی کرد خط خرچنگور باقی را که جلوش بود بخواند. روی کاغذ به جز لوله‌های بخاری یا داشت های دیگری هم بود. معاون اداری همه نامه‌ها و هایی را که دختر ماشین نویس تایپ کرده بود، جمع کرده آخر وقت پیش مدیر برد تا امضا کند. هر کاغذی را که جلوی مدیر می‌گذاشت، خلاصی از آن را هم می‌گفت. برای لوله‌های بخاری قربان آ خیلی خوب، مدیر پای نامه رو امضا کرد. آن روز صبح وقتی مدیر اداره داشت کاغذ های روی میزش را میخواند از این نامه چیزی سر در نیاورد. مدیریت محترم اداره به مناسبت فرارسیدن زمستان جهت تعمیر لوله های آب به ارز میرساند که لوله های کهنه قابل استفاده نیست. لذا تقاضا دارد در مورد خرید لوله های جدید به مقدار لازم دستور مقتضی را صادر را فرمایید. مدیر اداره تازه به این سمت منصوب شده بود. زنگ را زد یکی از کارمندهای قدیمی را صدا کرد و از او پرسید. مگه لوله های آب به اداره ما مربوطه؟ کارمند عجب کرد. کدوم لوله های آب قربان خب لوله آب دیگه؟ کارمند کمی فکر کرد. بعد بادی به قبقب انداخت و گفت. لوله های آب مربوط به اداره لوازمه مدیر اداره کاغذ را به طرف کارمند گرفت و گفت به این نامه نگاه کنین و یه نامه برای اداره لوازم بنویسین. کارمند نامه را گرفت و بیرون آمد. نامه ای را که مدیر داده بود خواند بعد بر اساس این نامه پیشنویسی تهیه کرد و به منشی داد تا با ماشین تحریر تایپش کنند. در نامه ای که به دست مدیر اداره لوازم رسید این طور نوشته شده. بود. مدیریت اداره لوازم از آنجا که زمستان فرا رسیده است، جهت مسیر اداره آب چون اداره های کهنه قابل استفاده نیست، احتراما برای خرید اداره های جدید دستور مختزی صادر نمایند. مدیر اداره لوازم نامه را خواند یک بار دیگر خواند بعد دگمه آیفون را فشار داد و گفت هلا دینبک، شما میدونین اداره آب کجاست؟ صدای از داخل آیفون جواب داد چی؟ اداره آب؟ والا آقا اگه درست خاطرم مونده باشه اداره آب وابسته است به امور فنی. یه نامه اومده میفرستن واسطون. لطفا هر کاری لازمه انجام بدین. مدیر اداره لوازم نامه را داد به آبدارچی تا ببرد پیش علاودین بیک. علاودین بیک هم نامه نوشت برای مدیر امور فنی. مدیر امور فنی وقتی داشت نامه های روی میزش را میخواند به چنین نامه ای برخورد. مدیریت امور فنی به مناسبت رسیدن فیش جهت رئیس اداره آب از آنجا که دو نفر تعیین شده و چون اداره های کهنه دیگر قابل استفاده نیست با استناد به نامه اداره لوازم برای رنگامیزی اداره آب اقدام مختزی در صورت امکان دستور فرمایند. مدیر امور فنی نامه را خواند. بار دیگر خواند. یک بار دیگر خواند. وقتی دید از آن سر در نمیآورد، پایینش نوشت، به جهت ارتباط نامه با اداره آب به آن اداره ارسال شود. معاون مدیر اداری آب روزی چنین نامه ای به دستش رسید. مدیریت کل اداری آب به مناسبت رسیدن فیش، جهت رئیس اداری آب از آنجا که دو نفر تعیین شده و بنابر دستور مقام ریاست مبنی بر تعویض اداره های آب فرسوده و کهنه با اداره های نو و مدرن معروض می دارد، خواهشمند است، متخصصان سازمان شما، گزارشی در باب رنگامیزی اداره های آب به طور کل یا رنگامیزی اداره های کهنه، تهیه و برای تقدیم به مقام عالی ارسال و غیره. معاون مدیر اداره آب نامه را چند بار خواند. وقتی دید چیزی دستگیرش نمی نامه را برد پیش مدیر. مدیر با یک بار خواندن، قضیه را فهمید، شادمان فریاد زد خوب شد چند سال ما هم همینو میگیم، اما کو گوش شنوا خدا رو هزار مرتبه شکر، دیر هم اگه شده باشه، بالاخره فهمیدم. معاون گفت، منم فهمیدم، اما قضیه فیش رو نفهمیدم. آخر نوشته به مناسبت رسیدن فیش. مستر فیشر دیگه، عزیز من. مستر فیشر؟ ببین ازیز من ما چند سال پیش یه متخصص خارجی درخواست داده بودیم و اون موقع گفته بودن متخصصی به اسم مستر فیشر قراره بیاد یه مسئله دیگه هم هست توی نامه نوشته دو نفر تعین شده یعنی چی دو نفر؟ کافی نیست این کاری نیست که دو نفر از پسش بر بیان شما همین الان یه نامه واسه شرداری بنویسین و ده نفر نیرو از اونها بخواین. این یک بنویسین با رنگامیزی کار درست نمیشه. این درست دو روز بعد در صفحه دوم روزنامه خبری منتشر شد که کسی از آن سردر نیاورد. امسال کمبود آب نخواهیم داشت. بنابر اخباری که از مقامهای مربوطه به دستمان رسیده است، تأسیسات آبرسانی شهرمان که دیگر غیر قابل استفاده شده است، با تأسیساتی جدید جایگزین خواهد شد. به این ترتیب، مشکل کمبود آب به طور کامل حل می شود. بدین منظور، مستر فیشر، متخصص اداره فدرال امور آبرسانی ایالات متحده به کشورمان دعوت شده است. چنین این نامی به دفتر شهردار ارسال شد. مقام منی ریاست شهرداری موضوع تشریف فرمایی مستر فیشر احترامن به عرض می رساند طبق اسناد زمیمه به مناسبت تشریف فرمایی مستر فیشر نیازمند 20 مهندس جدید و تکمیل کردن تدارکات لازم می باشیم. با تشکر همین که یکی از معاونان شهردار این نامه را خواند فوراً دوید و خود را به دفتر شهردار رساند جناب شهردار مستر فیشر میآید کی؟ مستر فیشر بله مستر فیشر زود تدارک لازم را ببینید چون این نامی به دست مدیری رسیده بود که تعمیر و تعویض های بخاری را درخواست کرده بود به رئیس تشریفات خبر رسیده که در روزهای آینده هیئتی از آمریکا تحت سرپرستی مستر فیشر به کشورمان خواهد آمد خواهشمند است برنامه استقبال را آماده کرده فورا ارسال نمایید مدیر نامه را که خواند معاون اداری را صدا کرد و گفت هیئتی به ریاست مستر فیشر میاد باید برنامه استقبال آماده کنیم چشم قربان میدان تقسیم رو چراغونی میکنیم فواره ها رو زیرش نرفکن رنگی میذاریم بله بله بنویسین خیابون استقلال رو هم آزیم بندی کنن مدیر استاد کمی بعد پرسید لوله های بخاری چی شد؟ نامش رو نوشتیم قربان ای بابا توی این مملکت هیچ کاری زود به سرانجام نمیرسه یه نامه دیگه بنویسین اطاعت قربان